قوم الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نحمده و و و نعود به تبارک من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله صل الله علیه و عاده اللَّهُ الْعَزِيزُ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ إِنَّا نَضَّحَ صَفَا آدَمَ وَمَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ على عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّتًا من مِنْ وَاللَّهُ آیات سی و سه و چهار و سی و چهار, و چهار. اللهم کل وری کل خجت ابن الحسن صلواتك عليه علیه و على في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا و قائد مناصره و حتی تسکنه اردکت و آ و تمتعه فی آتوید اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا به حسین و اولادهی و اهل بیدهی و اصحابه صلوات الله و سلامهو علیه خودم و عزیزان را به ورع به تقوا توصیه میکنم آیه کریمه‌ای که تلاوت شد مفادش این است که خدا برگزیده است در طول تاریخ و در روی زمین انسانهای استثنایی را ان الله خدا برگزید به انتخاب کرد انسان‌هایی که صفند انسانهایی که خلاصه بشریتند، چون ع که خلاصه گل آز انسانهایی هستند که نشان میدهند عالم رو نشان می‌دهند خدای متعال رو این انسان ها انسانهای استثنایی هستند که امال بنای خدا امال جمال و جلال در آنها جلوه کرده است ان الله از تفا آدم و منن و آل ابراهیم و آل عمران خدا برگزید افرادی را شن ابراهیم و آل ابراهیم که آل ابراهیم اسحاق و انبیاء بنی اسرائیل و از طرف دیگر اسماعیل که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسنده پرین زدریه ابراهیم خلیل است و آل امران که امران پدر مریم کبره است که در صوره مبارکه تقریم هم به همین اشاره کرده است و مریم ابنتو امران اینها مصطفان در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه آلم زد خواست تا جلو دهد صورت خود را محبوب یعنی خدا خواست تا جلو دهد صورت خود را محبوب خیمه در معرکه او بوکلئ آدم زد در صحنه کربلا مختی ابی الله علیه السلام با لشکر صحبت کرد و فرمود این امام پیغمبر است من فرزند زهرا پدرم علیس ادیش شاد فرمود پس چرا خونه مرا شما که میگید قبول داریم چرا خونه مرا حلال میدانید به ما به ما تستهل جواب دادن بغزن لعبیک یک نفر از آخر نشکر به نام محمد ابن عشقس ابن قیس کندی این صداشو بلند کرد گفت خسین این که میگویی جدن پیغمبره مادرم فاطمه است این به چه دلیل تو ترجیح داری بر ابن معاویه او پدر بود و او جد بود و او مادر بود به تو چمر بود که میگویی من حجت دارم بر یزید از کجا حکومت از یزید نباشد و از تو باشد امام حسین علیه السلام این آیه شریف رو خوند ان الله اصطفى آدما من و آل ابراهیم و آل عمران على العالمين صرفکتان من بعض ها منبست و الله سمیعون علیم من زدیه ابراهیمم من بعض ها منبست تمام انبیاء و اولیاء از بد به خلقت و از روزی که آدم آمد تا ختم خلقت که خاتم اولیاء انسان کامل اوست حضرت مهدی ارواح و این تسبیح که یک نخ همه را به هم وصل کرده است. اینها یک سرسره یک پیبند یک تیپ یک طائفه هست و من یکی از اونها هستم نتوانست لشکر جواب بگوید زردگتن بعضها من باز من زردگی پیامبرم مادرم فاطمه است لشگر سکوت کرد این محمد ابن عشقس ابن قیص که چنین حرفی رو یکی از اصحاب به امام حسین از کل آقا این رو می شناسی فرمود کیه گفت این محمد ابن اشعث ابن غیس کندی این کسی است که مستور بن عقیل رو به شهادت رساند ابن زیاد به او گفت این با یک لشکری دف به مستور بن عقیل رو شهید کرد ای اوس امام حسین علیه السلام وقتی این جمله رو شنید و این که او گفته بود به چه دلیل این عزت از شماست به چه دلیل شما حاکمی این عزت از یزید چرا نباشه و از شما باشه حضرت این آیه رو تلاوت کرد وقتی شنید این محمد ابن عشق ازه است گفت خدایا این را با همین امروز بمیران با زلت فوری این احتیاج به قضا حاجت کرد رفت در اون کناری توی خاکها تا نشست یک مار اون زد یک دفعه صداش بلند شد دیر ایخ دیدن همین تو مکشوف و ال العوره داره به خودش میپیچه داد میزنه تا به جهنم رسید به جهنم بازر شد این از ست امام حسین رو زیر سوال ببره خدای متعال هم به نفلی نبون حضرت پاسخش داد این یک جاس که استدلال کرده به استشحاد کرده حضرت حسین علیه السلام به این آیم جای دوم هم هست در کربرا ولی مورد ثومش رو احض کنم بعد بیام به همین مورد دوم مورد ثوم امام احض ارباه و ناله الفیره در روایت داره پنج تا روایت داره یکی از اونها از نظر سند بسیار عالی است محمد ابن یعقوب کلینی نقل می کند از رواتی مثل علی ابن ابراهیم از حلی ابن ابراهیم و از حاشم و اون نقل می کند از حسن ابن محبوب میگوید که روایت اینه که در اونجاست از امام ششم علیه السلام که وقتی حضرت تکیه می به دیوار کعبه میگه من از همه برترم من یهات جنیفی آدم فعنه اولابه همینطور من یهات جنیفی نو من یهات جنیب کتاب الله من جنی بر رسول الله من بر همه برترم به این آیه تمسک میکنه ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمين سترك يتن باس و الله صمیون علی. بعد حضرت در همون خطاب است که میفرماید و این مقام خودش رو بیان میکنه این فرماید انا بقیتون من آدم بعد از بیان آوی شد انا بقیتون من آدم به زخیرتون من نوح به مصطفی من ابراهیم به صفتون من محمد صلی اللہ علیه مجمعیم این, این رتبه است که حسین علیه السلام به او افتخار میکنه و لشکرش رو لشکر عمر بن سعد رو با همین جمله و همین امتیاز آوی شریفه محکوم میکنه دیگه نمیتونن جواب بدن این آیه است که امام زمان با او نا وقتی در برابر تمام بشریگت روی زمین به ایسته هر کس در دلش این باشد از کجا امام مهدی مقدمه از کجا او امام به حجت خدا از کجا این آیه شریفه رو تلاوت میکنه یعنی منم این کسی که این آیه شریف در باب اشقراعت شده علی اکبر داره وقتی که امام حسین علیه السلام بازم دید که علی اکبر آمد ایستاد جهاد بکرد خود علی اکبر از این از این آیه شریف است چون حمید ابن مسلم که نویسنده تاریخه میگوید سراوی حسین در گوش من سما اوزنی در گوش من سراوی حسین پیچیده است که روز آشوراب بلند وقتی علی اکبر به میدان می گفت انا لا هستفا آدم و نوحن و آل ابراهیم و آواز امبران علی الاعلامین زرتشتان و زحمت باس و الله حسّامی علی یعنی علی که أكبر مسخره اسماعیل کش از علی اکبر أكبر انسان کامل است مسخره تمام مزیباتی است مسخره هکمته مسخره وعفته مصارع اسماء و جلال اسماء الجمال و جلاده این چنین با لشکر بلند صحبت کرد دنبال علی حرکت میکرد این امتیاز و این عظمت نشان میدهد که چه کسانی در این مکتب پرورش یافتند و مکتب عاشورا چه انسان عاری بوده؟ درست است سر اونها امام حسین علیه السلام بود ولی علی اکبر صف این آلم است خلاصه آلم است حالا اینکه خلاصه ی عالم است خدا انتخابش کرده ولی در سیر زمان هم این خلاصه خلاصه تر می شود این صف صف تر می شود صف در برابر کدره دلهای کدر دلهایی که به گناه متوجه قلبهایی که به دروغ به خیانت به شهوت به فساد متوجهان. این آن نقطه مقابل همین مصطفی نقطه مقابل این صفه انسان که خدای متعال برای بشر و برای انسان ها این انسان ها رو بیان میکنه برای این است که همه توجه کنند چون ها بدانن علی اکبر رهبر اون هاست. کسی که میگوید خدا به صفات اداوی در خاص خواست بیاید به میدان مخدرات الوعی احت به تعلق نبی مخدرات وعی زنها و بچه ها دورش اخابت کرد تعلق نبی دستشو گرفته رو توی پاش افتاده گفتن ارخم علا ارحم ارخم علا قربتنا لا تا قتلنا علا فراغ ما به فراغتو نمیتوانیم مبد ما هم اون گوشه خیمه ایستاده نگاه از طرفی بعدیم، از طرفی به بچه ها و فلا. حالا این تجلبیه این تجلبیه استفاق اینجاست علیه اکبردی برد دست برده نمیدارن این بچه‌ها دستشو بلند کرد به طرف امام بزن گفت اما خوهرها و بچه ها حجت تا وقت مکسور قد اجتمه اعدا و علا اراغت دمه حجت خدا تنهاست دشمن احاده کرده عجیبه علی اکبر نگفت پدرم نگفت پدرم مکسوره قد اجتمه اعدا و علا اراغت دمه فرمود حجت وقت، یعنی حجت زمان امام زمانم من. من بعد از امام زمانم هم ابیت کنم از امام زمانم دفاع کنم این برخورد علی اکبر است در تمام این ها اون صحنه ادب صحنه استفا و برگزیده در زیارتی است که نقل می کنن از امام صادق علیه السلام که امام ششون وقتی آمد به کربلا خواهد زیارت کنه در این زیارت دارد که وقتی وارد شد این شریعه فراف بود اول دارد فرمود که آب به باز بازم چاری هستی تو چاری هستی باز چاتم شهید شد علی یاسر شهید شد علی اکبر رفت خیلی گریه کرد حضرت امام صادق بعد هم در سیاراتش یکی زیارت علی اکبر در اونجا با علی اکبر که صحبت میکنه میفرماید که به ابیان و اممی فئات عب به ابیان و اممی دم خد مرتغا دم خد مرتغا علی خونه تو رفت به سرت خلاص بود. به دیانت اومدی. شهیدی که آمدی جلو پدر به ایستادی استادی و اونجور کلمات گفتی و فداکاری کردی. بممقت من بینه های ابیک آمدی جلو پدر یا مقدم مقدم این عراق عبیق به نگه این یه و یبکی عرق و یبکی عرق پدر به بادارم به فدای تو که وقتی آمدی ازن جهاد بگیری جدن خیلی بر تو گریه کرد یبکی عرق و یه ترق و علاق همین تو میسوخ جگر جگره که تو به میدان میروی روی همین دبن مسلم میگه که دیدم بعد از اون ندایی که حضرت کرد این الله هستفا آتم و بنوان آخی و آقا آب ابران عرل آرمین یک سخنی هم با خدا گفت این خطابش به لشگر بود یک خطابم با خدا داشت، و گفت خدایا ببین که من جوانی رو به میدان میفرسم که وقتی اشتغنا وقتی دلم تنگ پیغمبر رو میشد میخواستم پیغمبر رو ببینم به علی نگاه می کردم خلقن به خلقان به منطقان به رسول الله درم که تنگ شد علی رو می دیدم. این خطاب هم به خدا داشت علی که اکبر آزم مقدان شد و جنگید و برگشت برگشت آمد به پدر گفت اینها همه نکته هاییست که نشان میده علی چقدر بالاست امین علی اکبر آمد میداند علی در لشت در دل خیمه ها آب نیست این رو میدون علی یه اسخر از بی آبی می به خودش میورده ولی این چه است که علی کرد و به پدر گفت گفت پدر سقل الحدید اجهدنی من جهاد برام سنگین شده خیلی سخت شده اصله فداکاری در جنگیدن چقدر کشته حل ادا شربت مند ماه راهی برای خورد آب هست که من بنوشم به نظر میلسه علی اکبر چون تو دایره ولایت بود میدید با قدرت ولایت میشود یک جایی آب تحییه کرد یک جایی شمشیر زد و آب به دست بیاد ولی باید پدر بگه او رهبر آشوراست و لذا از کد را اراشت به تمند سبیل امام حسین نفرمود،, نفرمود فرمود نیست یا نه فرمود علی چان بیا من زبانمو در دهنت ب... زبانمو در دهنت بگذارم علی زبان در دهنت حسین زبان در دهنت علی گذار علی دید عجب چه زبان خوشی اما امام حسین انگوشترشو در آبود فرموید علی جان بگیری این رو و پرو به میدان علی فهمید برنامه اینه برنامه شهادته با تشنگیه با تشنگی اهل این رضای خداست همین راه باید رفت علی رف. شیخ مفید در ارشاد می نویسد وقتی علی اکبر به میدان افتاد رو زمین افتاد حسین آمد اما اش زینب هم از خیمه بیرون دوید دوید و آمد خودشو انداخت روی بدن علی اکبر امام حسین که آمد دید زینب تمام بدن علی رو در بغل کرده روش افتاده <تصفح> اخذر به رأسها سر زینب رو گرفت برمود خوهرم بلند شو لشگر هرهره هره میکنن لشگر کف میزنن زینب رو برگردان حسین نشست جدست عدت تراب سر علی رو به دامت گرفت ولی دید این در لابلا یه خون این چشما نگاه میکنه مثل این که چیزی میخواد به عوی عبدالله بگه که علیه همس خود دمه خون رو از لباد دان علی پاک کرد ولی که بخواد متنبی بگه بگه وقتی تمان داشت بگه گفت بابا این جد من رسول خداست این جامعه آب برای من آورد، من نوشیدم و سیراب شدم صلی اللہ علیک یا عبا عبدالله و علی الارواب اللتی حلت به فنایک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اینو no attai nå kalde وانحر för soldater vi kan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم با علو المؤمنين با علو الرسول الزهراء البتول و على الحسن و الحسين و علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و الحسن ابن علي و الحجت القائم العسكري حججك عبادک عبادك رقم منعكفي بلاطك خودم به همه عزیزان را به, به تقوا توصیه می کنم روزی است به علی اکبر تعلق داره مخصوصا جوانان ما مقتدی رهبری مثل علی اکبر دارن انسانی که آسمان ها به او افتخار میکنه حیف است که امرا به علی اکبر عزیزان نباشی پسران و دختران جامعه الگور و علی اکبر بگیرید فداکاری ایسا معنویت یه مقداری از معنویت او در زندگی وارد کنی تا دامنمون هموار پاک و پاکیزه باشد به تقوی و و به دوری از گناه ان ش ال یکی از مورخین به نام عباس محمود عقاد موسوعی دارد ایشان از نویسندار مشهور مصررییس مردی متله از تاریخ و اهل سنت هم هست راجع به آشورا خیلی حرف زده ولی بنده این رو از یک مرد یک عالم سنی نقل میکنم که ببینید چگونه درباره حادثه آشورا صحبت کرده و اون بحثی که به طور خلاصه بنده در خطبه دوم دارم پیرامون همین مسئله شهادت به برنامه و نتائجی که انسانیت از تو در طول تاریخ از شهادت برده است اقاد می نویسد وحدتها اتحادها همه در روی زمین روی مساله است که برای یکدیگر دیگر میبینن مساله اقتصادی مساله سیاسی مساله مختلفی که در زندگی است با هم دوست میشوند یک دسته میشوند با هم پیوند پیدا میگوند ولی در دل این وحدت نیست وحدت در دل است که دلهاو به یک جا متوجه شود به اون خدا اسباب فتنت و این ممکن نیست مگر به شهادت یعنی انسانهایی باید باشند در راه خدا ایثار کنند و شهید شوند اینها بشوند الگو یعنی تمام توجه به خدا البته شهدای تنها هم کافی نیست میگه اینها صف اولن ولی صفوف بعدی لازمه که اون صفوف بعدی معتقد باشند به شهادت برای شهادت ارزش خائل پیدا بداند شهادت بسیار مکتبی است مهم باعث تعبیر می‌کنم که خلاصه انسانیت مسکین است، انسانیت فقیر است و دست که رو به سوی شهده و شهادت دراز کرده، و دزام میگه لا انسانیت الا بلیس ایلا بلیس تشاد، انسانیت وجود ندارد مگر به شهادت. چون دو سفه در آدم، سفه باطل و سفه حق سفه هوا و عوص و به ایشان سفه مصد یعنی ارزشا یعنی امانت و صداقت یک سفه و اون سفه امنه سفه امنیته سفه عدالت سفه فداکاری این یک صفه دیگر صفه کسبه، به صفحه به صفه دروغه به دغل اینها مخالفانه این هست این دو صف در برابر همه اگر انسانیت بخواد باشه یعنی عدالت انسانیت یعنی امنیت انسانیت یعنی صفا انسانیت یعنی به همدیگر عواطف داشتن حقوق یک دیگه رو رعایت کردن این معنی انسانیت و این نمی شود مگر به شهادت، اساس شهادته بلزا اساس تمام ارزش ها شهادته اگر هر ارزشی رو ما دنبالشو بگیریم ارزش انسانی هی تصریح میکنه ارزش انسانی ممکنه ارزش باشه در علوم مادی و هست بعدی ارزش انسانی دنبال کنید میگه میرسد به ابو شهده و اون حضرت حسین علیه السلام و سلام همین کشور ایران این دفاع مقدس برای چی بود؟ این دفاع مقدس این همه ارزش ایجاد کرد این همه کشور رو حفظ کرد کشور رو نجات داد دشمن رو معیوس کرد چه کسانی کردن؟ شهده بودن مکتب شهادت بود افتخار از اونها بود سطح پشت سر هم قبول داشتن تمجید کردن به شهادت امثال حججی هجج ها افتخار کردند خانه ها پدران و مادران و همسران و فرزندان شهیدان به شهدا بالید افتخار بود این همین مکتبه این است که انسانیت رو روشن میده بزرگ میکنه دفاع مقدس تمام این شهدا شهدا از هر جمعی که بودن چه ارتش چه سفا چه دیگران خونهایی که به زمین ریخته شد اگر دنبال این خونها رو بگیرید خط این قطعات خونها رو دنبال کنید به گودال قتلگاه می رسید بنابراین افتخار برای انسانیت به شهادته برای اینکه عیسی ایسار و شهادت است که برای عدالت فداکاری میکنه ایسار شهادت است که برای امنیت فداکاری میکنه و الا میبلن بشریت این مرد که در امریکا این مرد که این همه یاوه گفت در امریکا و ایستاد در برابر دنیا نسبت به ایران چنین حرف های زشدی زد این حرف های زشت، این حقیقتش اینه، این در برابر صف ایستاده اون صف افتخار، اون صف شهادت اون شجاعت ها اون از خود گذشتگی ها از میکنه و الله اینها مثل اسرائیل که با اوس و حزینه اینها رو آل سعودم تأمین میکنه این عراس رو او باش در سطح زمین اینا همین انسانهای همین آدمهای فاسد از این صحنه ها سباهنی هست میگن چرا انسان ها فدا فداکاری بیاییم ما خاور میانه رو بگیریم خاور میانه جدید تشکیل بدیم از رود تا نیل رو بگیریم این شعارشونه به این دنیا رو وقتی که میبینن چنین استادگیست عصبانی میشنن این عصبانیت ها و این حرف‌ها نشان میدهد که چقدر اینها ها پستن. چقدر پستن به این شهادت این عظمت رو با وجود آورده این که شما الان میبینید در باره برجام این سخنه که رهبر معظم انقلاق فرمودن اگر بگه ما برجام رو پاره میکنیم ما آتش میزنیم یا اکنون میبینیم دولت اینجور در برابر امریکایی ساده به صحبت میکنه و میگه اگر شما چنین کنید ما بر کردیم به کار اولمون ولی در چارچوب صور این ریشش همین شهادت هاست همین فداکاری هاست اگر این قدرت ها و این شهادت ها نبود که اینجور محکم نمیشد صحبت کرد آیه و ازاز اینه و اینجا بنده باید یک جمعهیم در باره رفراندوم عراق از خونم به برادران و خواهران کرد بگویم بگویم کسانی که این برنامه رو مطرح کردن اینها تمام وصل به اسرائیل و امریکاست شما برادران و خواهران اگر رعی بدید اگر امضا کنید اگر به گردانندگان این رفراندوم شما هم به وز بشید باید فردای تاریخ رو پاسخ بدید به فرزندانتون باید پاسخ بدید که بگن پدران و مادران ما چه جنایتی کردن چه خیانتی به کشور کرده. کشور عراق رو تصعیه کردند چه جنگهایی تحمیل کردن و این همه خسارت‌ها شما به خود بیایید برادران و خواهران کرد فری به یک مش اراذل و اوباش رو نخورید سخنان آدمهایی که با امریکا و اسرائیدند و اون برنامه ها و اول سعود رو دارن بر دنیای مظلوم پیاده میکنن شما هم دست نشوید ایساب کنید به ایستید فداکاری کنید بگنگید با همه اونهایی که این برنامه رو دارن می چرخونن. شهید شوید به افتخار کنید این افتخار را کسب کردم همش برمی‌گرد به همون مکتب شهادت به همون را اینجا جمعی جمع اصونم برای عزیزان آموزش و پرورش به دانشگاهیان یار ببینید این وضعی که ما داریم این عزتی که در کشور به بهور قوقوی خدا البته به لطف خداست به حول و قوه خداست و به دست انایت حضرت ودیع از علیه السلام است بدون شک کده بدون شک به دست مبارک ایشان دست مبارک ایشان بر سر این کشور خدایا این دست رو نگه داره. پروردگار و رهبر عزیز انقلاب رو و مردمی که اینجور دنبال امام هستن و همراه رهبر عزیزمون هستن در ساوی امام زمان ارواحنا رو فدا معزستر و مکرمتر بدا <تصفيق> این وضعی که الان در کشوره این یک فداکاری میخواد یک ایسار میخواد به معلمان به دویران به استادان عرض میکنم به جمعنها عرض میکنم به دختران و پسران کشور به نور چشمانمون عرض میکنیم شما اون عظمت انسانیت به اینکه شما ایرانی در جمهوری اسلامی هستید چنین رهبرادی دارید علیه اکبر رهبره امام حسین رهبره این همه جوانها در اون راه شهید می شود شما خوب درس بخوانید، دنبال فسخ و فجور نروید دنبال گناه نروید مکتب علم رو مکتب دین رو مکتب اخلاق و فضائل رو تقویت کنید کشور بود دوشانه شما ایستاده شما شخصیت های آگنده کشوری امیدوارم که خداوند به همه شما توفیقی بدهد که بتوانید هر کدام یک فردی باشید در خدمت بزاری به کشور و به فرهنگ اسلام در آخر عرضمم یادی کنیم از اون فقیه مجاهد و فرزانه مرحوم آیت الله راستی کاشانی که یک شخصیت واقعا خالصی بود که وقتی امام الله مقامه تبعید شد به عراق اولی کسی که آمد خدمت ایشان با چند دفت دیگه از آقایان همین مرحوم آیت الله راستی بود و ایشان آمدن گفتن درس را شروع کنید و دور حضرت امام اعلم مقام مقاماهر گرفتند خدا یا شهدا ما و گذشتگان ما و ایشان را بر سر سفره امام حسین علیه السلام زیافت بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان دفیخوست الا الذين آمنوا و الصالحات و بالحق و تواصوا اللهم یا حمید و به محمد يا یا آلی به حق علی و یا به فاطمه يا یا محسن و به حق و یا سان به حق حسین سروات ات بر محمد و آل محمد فرو فرست هر وردگار و مشکلات جهان اسلام را مرتفع بفرما نخشه های دشمنان اسلام را علیه اسلام و علیه کشورهای اسلامی به خودشون بازگردد. ما را به اون چه رضای توز توفیق مرحمت کن بیماران لباس آفیت مرحمت بفرما حوالا صلی علی محمد و آل محمد و سلام علی